علت سوس شدن ایمان ها چیست عمل نکردم فقط دنبال محرمات میره انسان ترک نمی کنه محرمات رو ایمان ضعیف میشه و کمسو میشه